الذي خلق سبع سماوات طبقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتق هفت آسمان را بر فراز یکدیگر آفرید در آفرینش الله الرحمن هیچ بینظمی و خللی نمی‌بینی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 و برای آنان عذاب آتش سوزان آماده ساختیم و, کفروا عذاب جهنم و, و برای کسانی که به پروردگارشان کافر شدند عذاب جهنم است و چه بد جایگاهی اذا القفيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور هنگامی که در آن انداخته شوند از آن نعره‌ای وحشتناک می‌شوند در حالی که آن می جوشد تکاد تميز من الغیظ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 قالوا بلا قد جاء انا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم فِي في ضلال كبير میگویانند بله بیم دهنده و سوی ما آمد آنگاه ما او را تکذیب کردیم و گفتیم هرگز الله چیزی نازل نکرده است شما جز در گمراهی بزرگ نیستید وقالوا لو کننا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر و باز میگویند اگر ما میشنیدیم یا تعقل میکردیم در زمره دوزخیان نبودیم فاعترفوا بذنبهم فسحقل لأصحاب السعیر. پس آنها به گناه خود اعتراف کنند. پس دوری از رحمت خدا بهره دو با. ان ربهم لهم مغفرة بیگمان کسانی که در نهان از پروردگارشان میترسند آنان آمرزش و پاداش بزرگی دارند وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ اَوْ جَهَرُوا بِهِ اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ گفتار خود را پنهان دارید یا آن را آشکار سازید به هر حال او به آنچه در دل هاست آگاه است الا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ الْلَطِیفُ الْخَبِيرُ آیا کسی که همه موجودات را آفریده است از حال آنها نمی داند، در حالی که او باریک بین به آگاه است هو الَّذِي جعل لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَمْشُو فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُو مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُشُونَ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 آیا خود را از کسی که در آسمان است در امان می دانید که فرمان دهد زمین شما را فرو برد پس آن ناگهان به لرزش ام من في السماء این يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذیب یا خود را از کسی که در آسمان است در امان می دانید که تند بادی همراه با سنگ ریزه بر شما فرستد پس به زودی خواهید دانست که هشدار من چگونه است و کذب من قبلهم فكيف كان و به راستی کسانی که پیش از آنان بودند نیز دعوت پیام بر آن را تکذیب کردند پس عقوبت من چگونه بود؟ اولم يروا إلى الطیر فوقهم صافات و یقبض ما یمسکهنن إلا الرحمن. انه بكل شيء بصير آیا به پرندگانی که بر فراز سرشان است که گاهی بالهای خود را میگشایند و گاهی فرو می بندند نگاه نکردند جز خدای رحمان کسی آنها را بر فراز آسمان نگاه نمی دارد بی گمان او به هر چیز بیناست اما من هادا هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ من دون الرحمن این الكافرون إلا في غرور. آیا این چه کسی است آن کلشگر شماست که به جای خدای رحمان شما را یاری می کند کافران جز در فریب و غرورشان نیستند؟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 افمن یمشی مکباً على وجهه اهداء من یمشی سویاً على صراط مستقیم آیا کسی که به رو افتاد حرکت می کند به هدایت نزدیک تر است؟ یا آن کسی که راست و استوار بر راه راست گام برمیدارد. قل هو الذي أَنشَأَكُم وجعل لكم السمع وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا ما تَشْكُرُونَ بگو او کسیست که شما را آفرید و برای شما گوش و چشمان و دل قرار داد اما شما اندکی سپاسگزاری میکنید. انه هو الذی ذراکم فی الأرض و الیه بگو او کسی است که شما را در زمین پراکند و به سوی او گرد آورده میشوید. و یقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین. و میگویند اگر راست میگویید این وعده قیامت چه زمانی است قل انما العلم عند الله وانما أنا نذير مبين ای پیامبر بگو علم قیامت تنها نزد خداست و من فقط هشدار دهنده آشکار هستم فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتُ و جوهُ الَّذِينَ كَفَرُ وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُم بِهِ تَدَّعُونَ پس چون آن وعده و عذاب الهی را از نزدیک ببینند چهره کسانی که کافر شدند سیاه و اندوهگین می گردد و به آنها گفته می شود این همان چیزی است که شما آن را می طلبیدید قل ارایت ان اهلکنی الله ومن معیا او رحمنا فمن یجیر الکافرین فمن من عذاب الیم ای پیامبر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 بگو او خدای رحمان است به او ایمان آورده ایم و بر او توکل کرده ایم پس ای کافران به زودی خواهی دانست کسی در گمراهی آشکار است قل ارائیتم این اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بمائی ای پیام بر بگو به من خبر دهید اگر آب شرب شما در زمین فرو رود پس چه کسی می تواند برای شما آب روان بیاورد؟ بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده مربان وَالْقَلَمِ وَمَا نون سویاند به قلم و آنچه می ما مَا أَنتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِمَجْنُونَ که تو ای پیامبر به نعمت و فضل پروردگارت دیوانه نیستی و, و بیگمان برای تو ای پیام بر پاداشی بی پایان و انك خلق عظیم است و یقینا تو ای محمد بر اخلاق و خوی بسیار عظیم و والایی هستی پس تو به زودی خواهی دید و آنها نیز خواهند دید بی اییکم المفتون که کدام یک از شما دیوانه است این ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلهی و هو اعلم بالمهتدین همانا پروردگارت بهتر می داند چه کسی از راه او گمراه گشته است و نیز او به هدایت یافتگان داناتر است فلا تطع پس از تقذیب کنندگان اطاعت مکن ودو لو آنها دوست دارند و میخواهند خواهند که نرمی و مدارا کنی از آنها نیز نرمی و مدارا کنند و تطع كل و از هر فرومایه ای که بسیار سوگند دروغ یاد می کند اطاعت مکن همَّازِ مَّشَّائِن مش بِنَمِينَ آن بسیار عیب جویی که به سخنچینی چینی آمد و رفت می‌کند. من نعل اثیم و بسیار باز دارنده کار خیر و متجاوز و گناهکار است. عتل لن بعد ذلك خشن و کین توز و بدتر از آن بی و حرام زاده است انکان ذا مال وبنین بدان خاطر که صاحب مال و فرزندان بسیار است مبادا از او اطاعت کنی اذا تتلا عليه آیاتنا قال اساقیر الأولین. هنگامی که آیات ما بر او خوانده شود گوید اینها افسانه‌های گذشتگان است تنسمه علی الخرون. به زودی بر بینی او داغ گذاریم بلوناهم كما بلونا اصحاب بلنا أصحابجنتی اقسموا یااصمونها مصحیم ما آنها را آزمایش کردیم همان گونه که صاحبان باغ را آزمودیم هنگامی که سوگند یاد کردند که صبحگاهان میوه های باغ را بچینند. ولا يستثنون و انشاء الله نگفتند فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون پس عذابی فراگیر از سوی پروردگارت بر باغ آنها فرو آمد در حالی که همه در خواب بودند فَأَصْبَحَتْ كَصَرِيمٍ پس آن باغ سبز و خرم همچون شب سیاه شد و تنادوا آنگاه صواب یکدیگر را ندا دادند ان يغدو على حرصكم ان كنتم صارمين که اگر میخواهید درو کنید به سوی زار و باغ خیش بروید. و هم طلق پس آنها به سوی زار حرکت کردند در حالی که آهسته با هم میگفتند الا یدخلنها الیوم عليكم مسكين مراقب باشید که امروز هیچ بینوا و مسکینی در آن باغ وارد نشود و غدو علی حض قادرین و صوبگاهان با تصمیم جدی برمان و جلوگیری از مستمندان بیرون شدند فلما رأوها قالو اینا پس هنگامی که آن باغ را دیدند گفتند یقینا ما راه گم کرده‌ایم بل نحن محرومون نه بلکه ما بی بهره و محروم هستیم قال اوسطهم الم لكم لولا تسبحون یکی از بهترین آنها گفت آیا به شما نگفتم چرا شکر و تسبیح خدا را نمیگویید؟ قالوا سبحانا ربنا انا كنا ظالمين گفتند پروردگار ما پاک و منزه است مسلما ما کار بودیم فاقبل بعضهم علی بعض و آنگاه ملامت کنان به یکدیگر رو آوردند قالوا یا ویلنا اینا كنا طاغین گفتند وای برما که تقیانگر و سرکش بودیم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 كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا یعلمون عذاب خدا در دنیا اینچنین است و عذاب آخرت مسلما بزرگتر و بیشتر است اگر آنها میدانستند ان لِلْمُتَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ برای پرهیزگاران نزد پروردگارشان باقهای پرنعمت است اَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ آیا ما مسلمانان را همچون مجرمان و گناهکاران قرار می دهیم؟ ما لكم کیف تحكمون شما را چه شده است؟ چگونه داوری میکنید؟ ام لکم کتاب فیه تدرسون آیا شما کتابی آسمانی دارید که در آن میخوانید این لکم فیه لما تخیرون و در آن کتاب آنچه را انتخاب کنید برای شما نوشته شده است ام علینا یوم این لكم لما تحكمون. یا اینکه شما بر عهده ما اهد به پیمان استواری تا روز قیامت دارید هرچه چرا حکم کنید حق برای شما باشد؟ سلهم أيهم بذلك زعيم ای پیامبر از آنها به پرس کدام یک از آنان در برابر این ادعاها متعهده است املهم لهم شرکاء فلیأتو بشرکائهم این كانوا صادقین و یا اینکه آنها معبودان و شریکانی دارند پس اگر راست میگویند باید شریکان و معبودان خیش را بیاورند یه روزی که کار بالا گیرد و خداوند متعال برای داوری میان خلایق بیاید، ساغ برهنه و مکشوف گردد و دعوت به سجود میشوند ولی نمیتوانند سجده کنند. خاشعه ابصارهم ترهقهم ذله وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون در حالی که دیدگانشان از ندامت و خجالت فرو افتاده و ذلت و خاری وجودشان را در برگرفته است و یقینا که پیش از آن در دنیا در حالی که سالم بودند به سجود فراخوانده میشدند شدند فذرنی ومن به بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون پس ای پیامبر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 فاسبر لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلا تَكُن كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُوم ای پیامبر برای فرمان و حکم پروردگارت صبر کن و مانند صاحب ماهی مباش هنگامی که سرشار از غم و اندوه بود خدا را ندا کرد لولا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 فجتباه ربه فجعله من الصالحين پس پروردگارش او را برگزید و او را از صالحان قرار داد وإن يكادوا الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون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 بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده مهربان الحق روز واقع شدنی رستاخیز ملحق آن واقع شدنی چیست؟ و ما ادراک ملحقه. و تو چه آن انواقع شدنی چیست و چگونه است کذبت سمود و عاد بالقارعه قوم سمود و قوم عاد قیامت در همکوبند را تکذیب کردند فَأَمَّا ثمود فَأُهْلِكُو بِالطَّاغِيَهِ پس اما قوم سمود به بانگ سهمگین حلاک شدند وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُو بِرِیحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَهِ و اما قوم آد با توند بادی سرکش و سرد به حلاکت رسیدند سخرها عليهم سبع ليال حسوما القوم فيها صرعا كأنهم اعجاز نخل خاوية. خداوند هفت شب و هشت روز پی در پی بر آنها مسلت نمود آنگاه آن قوم را آن باد مانند تنهای پوسیده تو خالی درختان خرما بر زمین افتاده و هلاک شده می دیدی فهل ترا لهم من پس آیا از آنها کسی را میبینی بینی که باقی مانده باشد؟ و جاء فرعون ومن من قبله و المعتفکات بالخاطئه و فرعون و کسانی که پیش از او بودند و مردم شهر های ویران شده قاملوت مرتکب گناهان بزرگ شدند فعصا رسول ربهم فأخذهم اخذت الرابیه پس آنها از فرمان فرستادی پروردگارشان سرپیچی کردند آنگاه خداوند آنها را به عذاب سختی گرفتارشان کرد لما في همانا هنگامی که آب تغیان کرد شما را در کشتی سوار کردیم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 پس در آن روز واقعی عظیم قیامت به وقوع می پیبندد. و انشقت السماء فهي یوم واهیه و آسمان شکافته می شود. پس در آن روز سست می گردد و فرو می ریزد. والملك على و یحمل عرش ربک فوقهم یوم اذن و فرشتگان بر کنارهای آن قرار میگیرند و آن روز هشت فرشت عرش پروردگارت را بر فرازشان حمل میکنند کنند یوم اذن تعرضون لا تخفى منکم خافیه در آن روز شما همگی برای حساب رسی به پیشگاه خداوند عرضه می شوید و هیچ چیز از کارهای شما پنهان نخواهد ماند. فَأَمَّا مَنْ اوتی كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَا اُمُقْرَعُ كِتَابِيَهِ پس اما کسی که نامی اعمالش را به دست راستش دهند گوید بیایید نامی اعمال مرا بخوانید. اینی ظننت انی ملاق حسابیه من یقین داشتم که به حساب اعمال خودم خواهم رسید فهو فی عیشت راضیه پس او در یک زندگی پسندیده و رضایت بخشی خواهد بود در بهشتی بر این که میوههایش برای چید شدن در دسترس است کلو و شربو هنیئن بی ما اسلفتم فی الایام الخالیه و به آنها گفته می شود بخورید و بیاشامید جوارایتان باد به خاطر آنچه در ایام گذشته پیش فرستادید و اما من اوتی کتابه بشماله فیقول یا لیتنی لم اوت و اما کسی که نامه اعمالش را به دست چپش دهند گوید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 مال و دارائیم مرا بی نیاز نکرد و سودی نبخشید هلک قدرت و فرمان روائیم نیز از دست من رفت و به کلی نابود شد به فرشتگان گفته می شود او را بگیرید پس توق به گردن او اندازید سپس او را به آتش دوزخت بیفت کنید ثم فی سلسلت ذرعها سبعون ذراعا فسلکو او را در زنجیری که طول آن هفتاد ذراع است ببندید این است ببندید بیگمان بالله او هرگز به خداوند بزرگ ایمان نمی آورد و على و هرگز مردم را بر اطعام بینوایان تشویق نمی کرد فليس له اليوم ها هنا حميم پس امروز در اینجا دوست سمیمی و مهربانی ندارد که کمکش کند ولا طعام الا من غسلين و غذایی جز از چرک و خون ندارد لا ياكله الا الخاطئ غذایی که گناهکاران آن را نخورند فلا اقسم بما تبصرون پس سوگند به آنچه میبینید وما لا تبصرون و به آنچه نمیبینید اینه لقول رسول کریم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 و نیز گفتار یک کاه نیست، دیکن شما کمتر پند می گیرید. تنزیل من رب این قرآن از سوی پروردگار جهانیان نازل شده است. ولو تقول علینا بعض الاقاوین و اگر پیام بر سخنانی به دروغ بر می بست، سَأَخَذْنَا منه بِالْيَمِينَ مسلما ما دست راست او را میگرفتیم ثم ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ سپس شاهرگ قلبش را قط میکردیم. کردیم فَمَا مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ عَنْهُ حاجزی.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 و ما محققا می دانیم که برخی از شما تکذیب کنندگانی این کلام الهی هستید و, و همانا این قرآن بر کافران مایه حسرت و ندامت است و, و بیگمان گمان این قرآن حق الیقین است فسبح بسم ربک العظیم پس ای پیامبر به نام پروردگار بزرگت تسبیح گوی بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده مهربان سأل سائلون بعذاب واقع تغاظا کننده ای تغاظای عذابی وقوع یافتنی کرد این عذاب برای کافران است هیچ دفع کننده ای ندارد مِنَ اللَّهِ از سوی الله صاحب مراتب و درجات است تعرج الملائكة والروح الیه فی یوم كان مقداره خمسین الف سنة فرشتگان و روح به سوی او عروج میکنند در روزی که مقدارش پنجاه هزار سال است فاصبر صبرا جمیلا. جمیلا پس تو ای صبر جمیل یشه كن بیگمان آنها آن روز را دور میبینند و نراه قریبا و ما آن را نزدیک میبینیم یوم تكون السماء کالمه همان روزی که آسمان چون مثل گداخته شود وتكون تکون الجبال کالعه و کوه مانند پشم رنگین متلاشی و پراکنده شود و یسأل حمیم حمیما و هیچ دوست سمیمی و خیشاوندی از حال دوست سمیمی و خیشاوند خود نپرسد یا ودل مجری ملو افتادیم این ذا بیا او می اییم بی بنی به یکدیگر نشان داده میشوند گناهکار دوست دارد و آرزو کند خویشتتن را از عذاب آن روز بازخرط بفرزندانش و صاحیبتیی و اخین.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 كلاوا اما هرگز چونی نیست بیگمان آن شعله های آتش سوزان است نزت پوست از سر و صورت برمیکند د من ادبر بات کسانی را که به فرمان الله پشت کردند، و از حق روی گرداندند فرا می خاند و جمع فأوعا. و نیز کسانی را که انوال را جمع آوری و ذخیره کردند و حق آن را نپرداختند این الانسان خلق هلوعا یقینا انسان طاقت و حریص آفریده شده است اذا مسه الشر جزوعا هنگامی که بدی و مصیبتی به او رسد بیتابی می میکند. و, و هنگامی که خوبی به او رسد بازدارنده و بخیل می شود. مگر نماز مگر نمازگزاران الّذین هم علی صلاتهم دائمون. همان کسانی که بر نمازهایشان همیشه مداومت میکنند وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌ مَعْلُومٌ و کسانی که در اموالشان حق معین و معلومی است لِلْسَائِلِ وَالْمَحْرُومِ برای گدا و محروم وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينَ وَكَسَانِی که روز جزا را تصدیق می کنند وَالَّذِينَ هُم مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ و کسانی که از عذاب پروردگارشان میترسند ترسند عذاب عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ بیگمان از عذاب پروردگارشان در امان نتواند بود و لذینهم لفروجهم حافظون و کسانی که شرمگاه را نگه میدارند الا علی ازواجهم او ما ملکات هم فانهم غیر ملومین مگر با همسران و کنیزانی که مالک آنها هستند که در این صورت ملامت و سرزنشی بر آنها نیست فمن هم پس هر کس غیر از اینها را بخواهد آنان متجاوزان هستند والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون و کسانی که امانت ها و عهدشان را رعایت می کنند و الذين هم بشهاداتهم قائمون. و که به شهادتهای خود متعهد هستند والذين هم على صلاتهم يحافظون و کسانی که بر نمازشان محافظت میکنند اولائک فی جنات مکرمون اینان در باغ بهشت گرامی داشته میشوند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 مدخل آیا هر کدام از آنها با آن اعمال ناپسندش تمع دارد که او در بهشت پر نعمت الهی درآورده شود کلا انا خلقناهم مما یعلمون هرگز چونی نیست بیگمان ما آنها را از آنچه خودشان می دانند آفریده ایم فلا اقسم برب رب والمغارب اینا لقادرون پس به پروردگار مشرقها و مغربها سویان می خورم که ما یقینا قادریم.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 بسم الله الرحمن الرحیم بناام خداوند بخشنده مهربان ان ارسلنا نوحا إلى قومه ان انذر قومک من قبل ان یاتیهم عذاب الیم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 ان اعبدوا الله واتقوه واطيعون که <سؤال> <سؤال> <eres> الله را پرستش کنید و از او بترسید و مرا اطاعت کنید یغفر <سؤال> <سؤال> لكم من ذنوبكم ويؤخركم الى اجل مسمى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 قال رب اني دعوت قومي ليلا ونهارا و نوح گفت پروردگارا به راستی که من قام خود را شب و روز به ایمان دعوت کردم تلم يجدهم دعاء إلا فرارا اما دعوت من در حق آنان چیزی جز گریز نیاوزود و انی كلما دعوتهم لتوفر لهم جعلوا اصابعهم في اذانهم جعلوا اصابعهم في و, و, اصروا و, و, و من هرگاه آنها را دعوت کردم تا تو آنان را بیا مرزی را در گوش هایشان فرو کردند و لباسهایشان را به خود پیچیدند و در مخالفت اصرار و پافشاری کردند و به شدت گردن کشی و تکبر نمودند ثم سپس من آنها را با صدای بلند و آشکار دعوت کردم ثم اینی اعلنت لهم و اسررت لهم اسرارا. آنگاه به آشکار برایشان گفتم و در نهان برای هر کدام از آنان بیان کردم فقلتو استغفرو ربکم اینهو کان غفارا پس به آنها گفتم از پروردگار خیش آمرزش بخواهید بیگمان او بسیار آمرزنده است یغسل السماء علیکم مدرارا تا از آسمان باران پیدرپی پی بر شما بفرستد و دیدكم باموال وبنين ويجعل جنات و, و شما را با اموال و فرزندان بسیار مدد کند به شما باغ های سرسبز بدهد و برای شما نهر های جاری قرار دهد ما لكم لا ترجون لله وقرا شما را چه شده است که برای الله عظمت و شکوه قائل نیستید؟ وقد خلقتكم اطوارا در حالی که شما را در مراحل گوناگون آفرید. الم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طبقا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 وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ود و لا سوا و لا يغوث و يعوق و و گفتند معبودان خود را رها نکنید و به خصوص ود و سوا و یغوث و و را رها نکنید وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمین الا ضلالا و راستی آنها بسیاری را گمراه کردند و تو ای پروردگار ستمكاران را جز گمراهی میفزا مما خطیئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا فلم یجدوا لهم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 و نوح گفت پروردگارا هیچ یک از کافران و دیارشان را بر روی زمین باقی نگذار انك انتذرهم یضلوا عبادك ولا یلدون الا فاجرا كفارا چرا که اگر آنها را باقی گذاری بندگانت را گمراه میکنند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 قال اوحي الي استمع نفر من الجن فقالوا سمعنا عجبا ای پیامبر بگو به من وحی شده است که همانا گروهی از جنیان به این قرآن گوش فراداده اند پس گفتند بیگمان ما قرآن عجیبی شنیدیم یهدی الرشد فآمنا به ولن که به راه راست هدایت می میکند پس ما به آن ایمان آوردیم و هرگز کسی را با پروردگارمان شریک قرار نمی دهیم و تعالی جد ربنا ما اتخذ ولا ولدا. شأن و عظمت پروردگار بس عظیم و بلند است او هرگز برای خود همسر و فرزندی انتخاب نکرده است وأنه كان يقول سفیهنا على الله شططا و اینکه صفیح و نادان ما شیطان در باری الله سخنان ناروایی میگفت و تقول الانس والجن على الله كذبا و ما چنین گمان می کردیم که هرگز انس و جن بر الله دروغ نمیبندند و آنهو كان رجال من الانسان عوضون بر من الجن فزادوهم رهاقان. و اینکه مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه میبردند. پس آنها به گمرشهای و سرکشی‌شان افزودند. و انهم كما ظننتم ان نه هموانو که موانن الله أحددم به اینکه آنها گمان کردند همان گونه که شما جنیان گمان میکردید که الله هیچ کس را دوباره زنده نمیگرداند وَأَنَّا لَمَسْنَا لمسنا السماء فوجدناها ملعت حرسا شدیدا و كَمَا ما آسمان را جستجو کردیم پس آن را پر از محافظان نیرومند و تیرهای شهاب یافتیم و انا کننا نقعد منها مقاعد للسمع. فمن يستمع الآن يجد له شهاب الرصد با ما پیش از این درجاهایی از آسمان به استراق سمع می نشستیم پس اکنون هر کس بخواهد استراق سمع کند شهابی را در کمین خود خواهد یافت وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيد بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا وَإِنْ كَمَا نَمِيدَانِمْ آیا برای اهل زمین شر اراد شده یا پروردگارشان خیر و هدایت آنها را خواسته است. و من الصالحون و دون ذلك كنا و در میان ما افرادی صالح و افرادی نادرستند ما گروه هایی متفاوت و گوناگون هستیم و اننا ظنننا ان لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا به اینکه ما یقین داریم که هرگز نمیتوانیم در روی زمین الله را عاجز و ناتوان کنیم و هرگز با گریز نمیتوانیم او را ناتوان سازیم و راه فراری نداریم و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 وَأَنَّ مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فمن أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا وَإِنَّ گروهی از ما مسلمان و گروهی کافر و ظالم هستند پس هرکس که اسلام آورده آنانند که راه کاری را جستجو کرده و برگزیده اند واما القاسقون فكانوا لجحنم حطبا فاما و وستمكارون هيزم آتش جهنم خواهند بود و الا استقاموا على الطريقه لاسقينهم ماء غدقا و انك اگر آنها بر راه راست استقامت و پایداری کنند البته با آب فراوان سیرابشان میکنیم لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا تا آنها را با آن نعمتها ها بیازماییم و هر کس از یاد و ذکر پروردگارش روی برتابت الله او را به عذابی سخت گرفتار میسازد وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُو مَعَ اللَّهِ أَحَدًا به این که مساجد از آن الله است پس کسی را با الله نخانید وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَدُو يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا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 و کسی را شریک او نمیسازم قل اینی لا املیک لكم ضررا ولا رشدا بی گمان من نمیتوانم به شما زیانی برسانم و نه خیر و سودی برسانم قل اینی لن یجیرنی من الله احد ولن اجد من دونه ملتحدا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 عداائده و اوعددون فسه علمون من اضف و ناف وقل و عددا کار کفار همچون ادامه دارد تا زمانی که آنچه را به آنها وعده داده شده ببینند آنگاه خواهند دانست چه کسی یاورش ورش ناتوانتر و جمعیتش کمتر است قل این اادی. اقریب ما ام يجعل له امدا. ای پیامبر، بگو نمیدانم آیا آنچه که به شما وعده داد شده نزدیک است یا اینکه پروردگارم گارم زمانی دور برای آن قرار می دهد؟ عالم الغیب فلا يظهر على غیبه أحد الله دانای غیب است و هیچ کس را بر اسرار غیب خود آگاه نمی‌سازد الا من یلتظا من رسول فاننه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا مگر رسولانیک <مگر> آنان را پسندیده و برگزیده است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 شب را جز اندکی به پاخیز و عبادت کن نصفه او انقص منه قليلا ای از آن را یا اندکی از آن کم کن او زد علیه و یا اندکی بر نصف آن بیافزا و قرآن را با ترتیل و تأمل بخوان یقینا ما به زودی سخنی سنگین بر تو نازل خواهیم کرد. این ناشئة الليله ش دوق وقو و بیگمان شب زندهداری بر نفس دشوار است و برای گفتار و نیایش مناسب و استوار تر است. ان لك فی النهار سبحا طویلا تو در روز مشغلهٔ بسیار داری واذكر اسم ربك وتبتل الیه تبتیلا و نام پروردگارت را یاد كن و تنها به او دل ببند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 و به اینیکو و شایسته از آنها دوری کن و ذرنی و المکذبین ومهلهم و قلیلا و مرا با این تکذیب کنندگان مرفه و منعم گذار و آنها را کمی مهلت ده لدينا لدینا انکالا وجحیما بیگمان نزد ما قید و بند های گران و آتش دوزخ وطعاما ذا غصفت و عذابا علیما. و غذایی گلوگیر و عذابی درناک است یوم ترجف الارض والجبال و كانت الجبال کثیبا مهیلا روزی که زمین و کوها بلرز در آیت و کوها متلاشی می شود و همچون تودی شن میگردد می گردد اِنَّا اَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا اَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رسولا <سؤال> <سؤال> یقیناً ما پیامبری به سوی شما فرستادیم که بر شما شاهد و گواه است همان گونی که به سوی فرعون پیامبری فرستادیم فعصى فرعون الرسول فاخذناه وبیلا. آنگاه فرعون آن پیام بر را نافرمانی و مخالفت کرد پس ما او را به سختی مجازات کردیم فَكَيْفَ تَتَّقُونَ اِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمَنْ يَجْعَلُ الْوِلْدَا نَشِيبًا پس اگر کافر شوید چگونه خود را از عذاب در امان می روزی که کودکان را پیر می کند السماؤمون فطر به کان وعده مفعولا در آن روز آسمان شکافته می شود بعد از او شدنیست این هذه تذكره فمن شاء اتخذ ربه سبیلا. این آیات پند و است پس هر کس که بخواهد راهی به سوی پروردگارش برگزیند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 عَلِمَ أَنْ لن تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَقَرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنْكُم مَرْضًا وَآخَرُونَ يَضْعِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِبُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا واعظم اجرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم یقینا پروردگارت گارت میدانند که تو و گروهی از آنها که با تو هستند نزدیک دو سوم شب و یا نصف یا سلس آن را به پا می خیزید. و الله شب و روز را اندازی گیری میداند می میدانند که شما نمی حساب آن را دقیق محاسبه کنید. لذا شما را بخشید پس اکنون آنچه برای شما میسر باشد از قرآ بخوانید.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 یا المدثر المدسر ایجام بر سر قم فانذر برخیز و بینده و ربک فکبر و پروردگارت را بزرگ شمار و سیابک فطهیر و لباسهایت را پاکیزه دار و رجز و از پلیدی دور کن ولا تمنن و نباید برای افزون خواهی چیزی را بدهی ولی و برای خوشنودی پروردگارت شکیبا باش فَإِذَا نُقِرَفِ النَّاقُور پس هنگامی که در سور دمیده شود فَذَلِكَ یوم اِذِي یوم آن روز روز سخت و دشواریست علالکافرین غیر یسیر برکافران آسان نیست ذرنی و من خلقت وحیدا ای پیامبر مرا با کسی که او را تنها آفریده ام باگذار و جعلت له مالم مندودا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 باز هم تمق دارد که بر آن بیفزایم کلا ایننهو کان لآیاتنا عنیدا. هرگز چونی نخواهد شد. بیگمان او نسبت به آیات ما دشمنی و عناد دارد. تأرّهقُه صعودا. و به زودی او را به مشقت و سختی میاندازم زیرا که او برای مبارزه با قرآن اندیشید و اندازه و محاسبه کرد. پس مرگ بر او باد چگونه اندازه و محاسبه کرد؟ باز هم مرگ بر او باد چگونه اندازه و محاسبه کرد؟ ثم نظر سپس نگاهی افکند. ثم عبس و بسر. آنگاه چهره در هم کشید و روی تارش کرد. ثم أدب و استکبر. سپس به حق پا نمود و تکبر ورزید. فقال إن هذا إلا سحر يظهر انگاه گفت این قرآن چیزی جز جادویی که از دیگران آموخته شده نیست. این الا قول البشر و این چیزی جز گفتار بشر نیست. ذسلیه سقر به زودی او را به سقر در خواهم آورد. و ما ادرا کما سقر, سقر. و تو چه سقر چیست؟ لا ولا تذر. آتش سوزانی که نه چیزی را باقی میگذارد و نه چیزی را رها می کند للبشر. پوست را دگرگون کرده و می سوزاند تسعت بر آن آتش نوزده فرشت گمارده شده است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 و این جزپند و اندرزی برای انسانها نیست کلا القمر. آری هرگز اینچونی این نیست که آنها تصور می کنند سوگند به ماه و اذ ادبر و به شب هنگامی که پشت کند و صبح الى و به صبح هنگامی که روشن شود اینها احد الکبر که آن آتش دوزخ یکی از چیزهای بزرگ و حول است ترساننده و هشدار دهنده برای انسان هاست ها من ان برای کسی از شما که بخواهد در راه راست پیش افتد یا از آن عقب بماند كل و نفسی بماك سب تواهین هرکس در گراو اعمال خویش است إلا أصحاب المين مگر اصحاب یمین ف جنات سل که در باغ بهشت هستند و میپرسند، عن المجرمین از گناهکاران سقر چه چیز شما را به سقر درآورد آورد گویند ما از نماز گذاران نبودین و لم نکو نطعم المسکین و بینوایان را تعام نمیدادیم و کننا مع و پیوسته همراه یاوهگویان گویان و اهل باتل هم صدا می‌شدیم و کننا بیوم الدین و هموار روز جزا را تکذیب کردیم حتی تا زمانی که مرگ به سراغمان آمد فما تنفعهم شفاعت الشافعین پس شفاعت شفاعت کنندگان به آنها سودی نمیبخشد. فما لهم عن تلکیرت پس آنها را چه شده است پند و تذکر روی گردانند که انهم حمر مستنفره گویی که آنها گور خران رم کرده اند فرت من قسوره که از شیر گریخته اند بل یرید كل امرین ان صحفا بلکه هر کدام از آنها توقع دارد و میخواهد كه که به او نامی گشاده و جداگانه از سوی الله داده شود كلا بل لا هرگز چنین نیست که آنان میپندارند، بلکه آنها از عذاب آخرت نمی ترسند. کل لا انه نا این قرآن پند و یاداوری است و من شاء پس هر کسی که بخواهد آن را یاد کند پند گیرد و ما یذکرون الا ان یشاء الله اهل التقوه و اهل المغفره و یاد نمی کنند و پند نمی گیرند مگر اینکه الله بخواهد او اهل تقوا و اهل آمرزشه است بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده مهربان لا اقسم بیوم القیامه به روز قیامت سوگند میخورم. خورم و لا اقسم بالنفس اللوامه و به نفس ملامتگر سوگند میخورم خورم آیا انسان میپندارد که پس از مرگ هرگز استخوانهایش را جمع نخواهیم کرد بلا قادرین علی ان نسوی بنانه آری ما قادریم که حتی خطوط سر انگشتانش را یکسان و مرتب کنیم بل یرید الانسان الیفجر امامه بلکه انسان می خواهد که آزادانه و بدون ترس از آخرت در گناه و بدکاری مداومت داشته باشد از این رو القیامه رومی روز قیامت کی خواهد بود برق البصر پس هنگامی که چشم خیره شود و خسف القمر و ماه تیره و بینور گردد و جمع الشمس والقمر و خورشید و ماه یک جا جمع کرده شود الانسان اين المفر؟ آن روز انسان می گوید راه گریز کجاست کلظ هرگز هیچ گریزگاهی وجود ندارد الى ربك آن روز قرارگاه نهایی به سوی پروردگار توست، الانسان بما قدم در آن روز انسان را از آنچه پیش یا پس فرستاده است خبرداده می شود بل السان على نفس بص بلک انسان به خوبی خویشتن آگاه است ولو الق عذ. اگر چه در دفاع از خود عذرهایش را در میان آورد لا به لسانك لتعجل به ای پیامبر هنگام نزول قرآن زبانت را برای تکرار و خواندن آن شتاب زده حرکت مده ان علینا جمعه و جمع آوری و خواندن آن بر عهده ماست فَإِذَا فا قَرَأْنَاهُ فَتَّبِعْ قُرْآنَهُ پس هرگاه توسط جبرئیل آن را بر تو خواندیم خواندن او را پیروی کن ثمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ سپس بیان کردنش بر عهده ماست كَلَّا <تصفيق> بل تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ هرگز چنین نیست که شما مشرکان می پندارید بلکه شما دنیای زود گذار را دوست دارید و آخرت را رها می کنید آن روز چهره هایی تازه و شاداب است به سوی پروردگارش می نگرت.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 و من راق و گفته شود چه کسی است که افسون بخاند و انه الفراق و یقین کند که زمان جدایی از دنیا است و الساق بالساق. و ساقهای پایش به هم بپیچد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 ثم ذهب الى اهله سپس خرامان به سوی خانواده آشپاز گشت او لا لك وای بر تو پس وای بر تو ثم او لا لك فاولا. باز هم وای بر تو پس وای بر تو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 فخلق آنگاه به صورت خون بسته درآمد پس الله او را آفرید و درست و استوار ساخت فجعل منه پس از او دو زوج نر و ماده پدید آورد اليس ذلك بقادر ان يحيي الموتى آیا چنین آفریدگاری قادر نیست که مردگان را دوباره زنده کند بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده مهربان هل اتى على الان سانحين زمانی طولانی زماني بر انسان گذاشت که چیزی مهم بقابل ذکر نبود ان خلقنا الانسان من نقطه امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا به راستی ما انسان را از نطفه مختلطی آفریدیم، او را آزماییم، پس او را شنوای بینا قرار دادیم. همانا ما راه را به او نشان دادیم، خواه سپاس گذار باشد یا ناسپاس، اننا اعددنا للكافرين سلاسل واغلالا وسعيرا براستی ما برای کافران زنجیرها و قل‌ها و آتش سوزان مهیا کرده ایم ان الابراء يشربون من كاس كان مزاجها كافورا بیگمان نیکوکاران در بهشت از جامی می نوشند که آمیزش کافور است عینایی شاب و عباد الله از چشمهای که بندگان خاص الله از آن می هر وقت و هر جا بخواهند آن را جاری می سازند بندگان نیکوکار به نظر وفا می کنند و از روزی میترسند که عذاب و شر آن فراگیر است ويطعمون الطعام على حبه مسكینا ویتیما وأسیرا و غذا را با اینکه نیاز و دوست دارند به مسكین بخشند. وأسیر میبخشند إنما نطعمكم لوجه الله لا نرید منكم جزاء ولا شكورا ومگوند ما فقط به خاطر الله به شما غذا میدهیم، نه از شما پاداشی میخواهیم و نه سپاسی. این ناخافو من ربینا یومنا عبوسا قنطنیرا. همانا ما از پروردگارمان میترسیم، روزی که عبوس و سخت و دشوار است فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم وسرورا پس الله آنان را از سختی و شر آن روز نگهداشت و آنها را شادمانی و سرور بخشید وجزاهم بما صبروا جنتا وحريرا و به پاداش صبری که کردند بهشت و لباس های حریر بهشتی را به آنان پاداش داد بودکی این نفیهائیک لا نفیهشمس در آنجا بر تخت های زیبا تکی کرده اند نه آفتابی در آنجا میبینند و نه سرمایی و عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا و برانها فرو افتاده و میوه برای چیدن در دست رست و بفرمان است و یطاف علیهم بی من فضت و كانت کانت و در گرد آنها ظرف های سیمین قضاها و کاسه های بلورین نوشیدنی ها گردانده می شود. من کاسه های بلورین از نقره آنها را به اندازه مناسب پر و آماده کرده اند. ویسقون فهاکسسم که كان مزاجها زنجبیلا. و در آنجا از جامهایی سیراب میشوند که آمیزش زنجبیل است. عفیه توسمسل سبیله از چشمی در آنجا که سلسبیل نامیده می شبد. باطف و عليهدان و و هموار نوجوانانی جودان برگردشان میچرخند که هرگاه آنها را ببینی گمان میکنی که مروارید پراکنده هستند. وإذا رأيت ثم رأیت نعیما و كبيرا کبیرا و چون به هر سمتی بنگری آنجا نعمت بسیار و فرمان روای عظیمی را میبینی عالیهم ثیاب سندس خضر و استبرق برانان اساور من وسقاهم ربهم شرابا بر آنان لباس های سبز رنگ از دیبای نازک و دیبای زخیم است و با دستبندهایی از نقره آراسته شده اند و پروردگارشان شراب پاک به آنها مینوشاند این هذا كان لكم جزاء وان كان گفته میشود این نعمت پاداش شماست و سعی و کوشش شما قدردانی شده است ان نحن نزلنا عليك القرآن تذلا ای پیامبر یقینا ما قران را بر تو تدریجا نازل کردیم. فَاسْتَبِرْ ولا تطع منهم آثماً او كفورا. پس برای حکم پروردگارت با باش و از هیچ گناهکار یا ناسپاسی از آنان فرمان نبر. وَاذْكُرِ اسم رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. و صبح و شام نام پروردگارت را یاد کن. وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا ونی از بخش اشاب برایش سجده کن و نماز گذار و بخش دیرازی از شب او را تسبیح گوی اینها اولائ یحبون العاجله و یذرون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 و هر زمان بخواهیم جای آنان را به گروه دیگری مانندشان میدهیم. این هذه تذكره فمن شاء بیگمان این یادآوری و پنده است، پس هر کس که بخواهد راهی به سوی پروردگارش بر و ما تشاؤون الا این یشاء الله إن الله كان علیما حکیما و شما چیزی را نمی مگر این الله بخواهد بگمان الله دانای حکیم است یدخل من یشاء فی رحمته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 سوگند به فرشتگانی که پی پی فرستاده شدند عصفات پس سوگند به فرشتگانی که همچون تند باد می روند نشرا و سوگند به فرشتگانی که ابرها را پراکنده می کنند فرقا پس سوگند به فرشتگانی که جدا کننده حق از باطلند ف و سوگند به فرشتگانی که وحی الهی را به پیام بران القام می کنند عذران او ذرا برای اتمام خجد یا برای بین و خوشدار اینما توعددون لوغ بیگمان آنچه به شما وعده داده می شودود واقع خواهد شد فائضا ننج مقومد. و هنگامی که ستارگان تیره و محو شود و ایده السماء فرجت. و هنگامی که آسمان شکافته شود و ایده الجبال نصفت و هنگامی که کوه ها از جا کنده و پراکنده شود و الرسل اضقیتت. و هنگامی که پیام بران جهت گباخی بر امتها وقت معین شود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 در آن روز وای بر تغذیب کنندگان. آلمنهلک آیا ما پیشینیان مجرم را نابود نکردیم؟ ثم نتبعهم سپس دیگران را در پی آنها خواهیم آورد. كذلك نفعل بالمجرمین این چونین با گنهکاران رفتار می کنین ویلون یوم للمکذبین در آن روز وای بر تکزیب کنندگان الم نخلق آیا شما را از آبی پست و ناچیز نیا فریدین فجعلناه فی قرار مکین پس آن را در قرارگاهی محفوظ و استوار قرار دادیم. الی قدر معلوم تا زمانی معین فقدرنا فنعم القادرون پس ما بر این کار توانا بودیم و چنیک توانا و قدرتمند هستیم در آن روز وای بر تقزیب کنندگان نجعل الارض آیا زمین را جایگاه تجمع مردم قرار ندادیم؟ واتا. هم در حال حیات و زندگیشان و هم مرگشان. و و فرات. و در آن کوه بسیار بلند و استوار قرار دادیم و آبی شیرین به شما نوشاندیم. ویلون یوم ایدل للمکذبین در آن روز وای بر تکذیب کنندگان انطلقو الى ما كنتم به تكذبون به آنها گفته می شود به سوی همان چیز بروید که پیوست تکذیبش می کردید این بالق اینزی ذی ثلاث ب بروید به سوی سایه دود های آتش سهشااخه ل ولا یغنی منله نسای ارکن و خنک است و نه از گرمی شغله های آتش جلوگیری می کند این همانا ترمي بشرر جهنم شرارهایی چون کوشک پرتاب می گاننه گویی که آن شراره ها شتران زرد رنگ هستند در آن روز وای بر تکذیب کنندگان هذا يوم لا ينطقون این همان روزی است که سخن نمی گویند و لا يؤذن لهم فيعتذرون و به آنها اجازه داده نمی شود تا آزر خواهی کنند ويل يومئذ للمكذبين در آن روز وای تکزیب کنندگان هذا الفصل جمعناكم این همان روز جدایی و داوری است که شما و گذشتگان را گرد آوردین كان لكم کیدون کیدون؟ پس اگر حیله و نیرنگی دارید آن را در حق من به کار گیرید يومئذ در آن روز وای بر تکزیب کنندگان این فی به راستی که در آن روز پرهیزگاران در سایه ها و کنار چشمه ها قرار دارند همین. و میوه هایی که میل داشته باشند کلوا تعملون به آنها گفته می شود بخورید و بنوشید به پاداش آنچه می کردید. انما كذلك نجزي المحسنين ما انگونه نیکوکاران را پاداش می‌دهیم و اين يوم للمكذبين در آن روز وای بر تکذیب کنندگان گلو وتمتعوا قليلا انكم مجرمون اي کافران در این دنیا اندکی بخورید و بهره گیرید زیرا شما گناهکار هستید. اذن وای ایوم در آن روز وای بر تکذیب کنندگان و اذا قیل لهم لا یرکعون و هنگامی که به آنها گفته شود نماز بگذارید و رکوع کنید نماز نمیگذارند و رکوع نمی کنند در آن روز وای بر تکذیب کنندگان فبی ای حدیث بعده یؤمنون ای پیامبر اگر این مردم به این قرآن ایمان نمی آورند، پس بعد از آن به کدام سخن ایمان می آورند؟